الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد النسلين وأهله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله عن ما رمى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وفي رواية بالنية وإنما لكل امرء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يسيبها أو إمرأة ينكها فهجرته إلى ما هجر إليه. بحث إنما الأعمال بالنية ما بحثي بحث حديث أو كأي محدث وما ب بحث إن إنما قفتم إن ك. این نما دلانت حفظ داره در لغت عربی در جاهایی البته در همیشه که نه برای توکیدن میاد یکی ای در این حدیث دلانت بر حفظ داره انحصار این که اعمال مستد عملی؟ اعمال شرعی درست اعمالمون دلانت چی؟ نیاز به؟ نیات داره خب الان اولما اختلاف داره اولما اختلاف داره که آیا عمل صحیح نیاز به نیت داره یا اینکه همه اعمال چه فاسدش و چه گرچه چه فرضیش و چه طالعش چه صحیحش و چه گریزایش همه اعمال نیاز به نیت صحیح دارن و نیاز به نیت دارن یا اینکه منحصر داره اعمال صحیح این حدیث بعد از علما گفتن که نیت صرف اعمال صحیح نياز سوف أعمل صحيح يعني أعمل بعد نياز من نياز نارد إن قولها بات فقد عمل صالح بعمل صحيح نياز من نياز بل يقرب بات نياز من نياز قول دموم اینه که هر عملی چه فاصلش، و چه صحیحش و چه اشتباه و چه غلقش چه صحیح و چه درست و ندرستش فرقی ندار با همه این ها نیاز بینید دار خدر که مثلا ما می‌بینیم جوهایی مثلا البانی مثلا در صحیحه و جوهای دیگر کتاباش میبینیم بی ایده الاعمال صحیحه بالنیات صحیحه نیات صحیح اعمال صحیح بستگی به نیات صحیحه همین طور پس مفهوم مقالب شیخ اعمال بد و نیات خیلی بد اگر یکسی اعمال بدی را انجام داد یه ها حرف مثل اون عربی که رسول الله یه وقتی که سطرش رو گم کرده بود بیاده سطرش رو دید گفت کچی تو بندهی منی و من خدایست من پروردگارست انا راب بکو انت عبدی ای این شخص محافظه میشه؟ حرفش است. یا نیم؟ کفر است. لیکه محافظه میشه؟ خیر محافظه نمیشه فقط اعمال بدم نیاز و نیت های بد تا نیت نباشه محافظه میشه نمیشه؟ محاوظه نمیشه بس تمامی این خود جمهوره تمامی اعمال تمامی اعمال نیاز به نیاز داره تمامی اعمال نیاز به نیاز داره این نیازه از جمهور علمه جمهور دونم نیازه یکی نیت تقربه و یکی نیازه تمیزه تشخیص نیت تقرر انسان بی اسم دراکت نماز بکنه دراکت نمیدونم نماز تحجه و دراکت نماز فلان نماز وزو هر نماز این برای خدا خرفم برای خدا یک کار نیکن خدرته بده روزه بگیره نیت باشه نمیشه نمیشه نیت دوتا باشه. مگر در کارهای سنت که میشه در یک کار سنت چند تانیت رو با هم جمعه میشه قرآن خون بانوان این بانوان صدبور بانوان فهم بانوان حفظ بانوان تلاوت میشه چند تانیت رو با هم جمع تقرور لیکن در واجب میشه نمیشه دوتا واجب رو با هم انجام داد چون باید تمیز بدیم هر دوتا بر ما واجبه در بحث تقرور باید نه مطلقه بحث تمیز یا تمیز نیت در بحث تمیز در بحث تشخیص خیلی بحث مهم در بحث نیت در باب سفر مهم اخلاص است. اخلاص باشد. یعنی انسان فقط برای خدا انجام بده. اما در بحث تمیز را برای خدا بودنش که هیچ، در وقت عداش کاری که انسان انجام میده اون کاری که میخواد انجام بده نیاز به تشکیف داره مثلا به فرمتن مثلاً تا مسال میدنم تا نیت در بحث تمیز و تشکیف مشخص بشه شخصی از من هزار من مثلا طلب داره درسته من درست جیبم بکنم پونستت من بهش بدم خب این پونستت من ای که من بهش میدم یا هزارت من که بهش میدم احتمال داره حدیه باشه احتمال داره قرض باشه و احتمال داره ادای دین باشه درسته؟ پس اینجا باید میت مشخص باشه یا نه؟ باید میت مشخص باشه حالا مثال دیگر حالا تر خیلی بحث مهمی حالا این حدیث اهمیتش در اینجا نمکتر الان یک شخصی یک چیز حلال را میخوره مثلا کار یک نوشابهی هست که از لحاظ اعتقاد خودش این نوشابه حرامه این نشابهی خاصه مثلا به فرض الکل توش. لیکن حالا مثلا به فرض من بهش میدم میگم این نوشابه توش الکل نیستم حرامه اون شخص بگیره بخوره هرچند که الکل توش نرفته باشه شخص گناهکار هست یا نه شخص گناهکار گناهکار هست چون میدونه حرام انجام داده حتی که حرام نباشه در ذات خودش که حرام بر حسب نیتش چی میشه؟ معاخذه میشه بر حسب نیتش معاخذه میشه اگر مثال دیگه بزنید در بحث تحمید و تشوید در بحث تلاف دو تا زن با حجاب این دو تا زن یکیش یکی همسرشه یکی همسرش همینطور شوخی به اون که همسرش فکر میکنه همسر که همسرش هست. اصلا فکر می‌کنه دیر حجاب دو تا با حجاب زن و با حجاب نیست به این که زنش نیست حالا در نیت خودش این زنش نیست میگه تو طلاقی هم طرفش اشتباه گرفته دو تا با زنش کلوش دو تا زن‌ها اونی که درگمان خودش زنش نیست و اون میگه تو طلاقی طلاق میفتی نمیفتی در جای اون زن الان به نا کنه الان چطور مگه صورتش دو تا شخصا جلوی من یکی همسر منه یکی همسر من نیست درسته؟ به اونی که همسر من نیست میگم تو طلاقی و در اون درگمان خودم فکر میگرم این همسر من نیز. لیکن اون همسر منه در زیر اون حجاب همسر منه من خبر ندارم اون همسر من اون زن من میشنه به این حرف طلاقش افتاد نه افتاد طلاقش افتاد طلاقش افتاد در از فکر میکنه که زنش نیست فکر میکنه که چی؟ زنش نید لیکه زنش هست آلا یعنی زنش هست وقتی که گفت طلاقی کیش شنیدین حرف در مسئله طلاق در مساله طلاق و همچنین در مسئله آزاد کردن از آزاد کردن برد نیت و شوخی و این مسائل رو شوخی کردن نبیدنم قصد نداشتم نبیدنم مشروب خورده بودن نواحت بودم عتبانی بودم هست این دو تا چیز اگر گفتی بردم همید. دو تا برده باشه فکر،, فکر کنم که این برده من نیست بگم تو آزادی آزاد شد خلاص باشه دیگه قربنیاتن نظر این مسئله مهمی که ربط داره به بحث اعمال و اعمال به نیاز پس نیاز یک بحثش برمیگرده می‌گردد به تخریب، یکی پژشش بر به تشخیص، و بحث هم خیلی بازه. فرمودن: و اینما لكل مرین ما نوا، و اینما لكل مرین. یعنی هر شخص، برای هر شخص آن چیزی هست که نیه این ما ما نوا به معنی این ما به معنی الَّذِي هست در مقاط عربی ای ولی این ما نوا یعنی الَّذِي نوا یعنی آن چی که آن نیت کرده الذي نوا آنه این در تجربه خیلی ما باقی میکنه و لكل امرئ ما نوى و ايمانه واق الذي نوى لكل برای هر شخصی هست که نیتش را کرده اصلا چه خیر باشه چه شر باشه حالا بعض از علما گفتن که نه ايما مصدريه ما مصدريه هم در نظر سی باب حرفه و حرف هم بهش بر نمیگرده و حرف هم بهش بر نمیگرده و تقدیرش اینه لکل امره نیتو و اینما لکل امره نیتو لکل امره نیتو ما دیگه حرفه خب این جبله از حدیث دلوت این داره انسان آنچه که نیتش را کرده به اندازه اون نیتش اجرش میبره و آنچه که نیتش نکرده و قفتش نکرده بهش میرسه از پیش نمیرسیم مثلا بالفر من دوتا نمازت من خود شده نماز الزهر آن و مدن در وقت عصد اون نماز را بکنم در جماعت و در مسته نماز عصر را بکنم من نزهر بکنم نعنم اینجا لازمه که من نیت بکنم عصر یا ظهر یا نه. بس لازمه که چی؟ من نیت بکنم که ظهر یا. چون دو تا نمازم فوت شده. جو من اومده مسجد اون نماز را ادا بکنم. در نماز فوت شده. حالا در نمازه نماز نمازه فوت شده. اومده مغرب بوند مغرب بوند. همین کافی که نیت کرده بیایم مسجد نماز بخونه حالا حتی اگه تو دلش نیست که من بیام نماز و مغرب رو بکنم فنا بکنم ولی اگر نماز فوت شده باید که نیت تمیز باشه تشکیف باشه که کدوم یک وقتش داری قبلی یا بعدی چون هر دو تا انسان میتونه انجام بده اومده نماز عت میکنم میتونه الان و صحیح هم همین اول نیت بکنه ظهرش رو بکنه به بعد از این که ظهرش شد شکار بکنه، بالاتر جوان، آسرا شو بکنه. یک مسئله دیگری که در بحث میاد، در همین جمله، والی کل امروز ما نوا. یک بحث دقیقی شد. آیا میشه نیابت بدم کسی دیگر در جای من نیاد بکنه؟ خیر، مگر در دریک در حالت چه حالت دیگر؟ حج. از, کی؟ از نوزاد، از بچه کوچک پدر، نوزادش همراه شد از جای نوزادش نیت بکنه، درسته؟ صحیح اینه که حج برای اون نوزاد نوشته میشه ولی در غیر اون میشه نیابد کرد؟ خیل. مثلا خیلی ها میگن برای ما سفر بکن درسته؟ شنیدید؟ برای ما سفر سفاره بکن یا فلان کسی سفر میکنه؟ میشه کسی از برای کسی دیگه سفر بکنه؟ می‌سن می‌خواد موبایل بخره میگه از جی من استفاده‌بکن عجب تو می‌خوای بخری یا من می‌خوام بخرم سبحان الله رسول الله چی می‌خرم میفرماید مثل اگر احدکم اذا هم احدکم اگر همت شخص دوتره في این مشکل پیش میوفتن می‌خواد یه چیزی را بخرن یا میخوان برن خواستگاری حالا معمولا تو این دو چیز معمولا انسان خواست سخاره میکنه حالا هرچند که بابش و درش بازه سخاره در همه کاره میخواد بره خواستگاری اولا دو دله این دختر اون دختر حالا صد مرتبه بیست مرتبه میگه توی خواهم نایمد توی دلم نایمان. هم در لغت علای منای قصد هر وقت قصدش رو کردی اگر خاصی اون کار را انجام بدی حالا تو دو تا دختر را در نظر گرفتی خواستی که یک از اونها را بری خواستی بری یا نه؟ هنوز نخواستی شعر چی خواسته؟ خواسته که ما توکل داشته باشیم خواسته که ما نیت بکنیم سری از شک و شبهه و وسوسه راحت بشیم خب یکی از این تا دختر را انتخاب بکن انتخاب کردی؟ حالا برو از دخار ای خدا در این دختر خوبه بازه ای من؟ مسخرش بکن برای ازدواج با اون رو بکنه اگر بده از من دور بکن میری خواستی دویت با قدرش صحبت میکن دخترت رو به من میدی میگه نه نمیدن قصدش رو کرد اما در وسوطه و دو دلی نمیشه استخاره وقتی انسان میتونه استخاره بکنه که یکی از دوکار رو قصد کرد اگر هم اگر قصد کرد این خیلی بحث مهمیه پس نمیشه در بحث نیت از کسی دیگر نیابت کرد، به جای کسی دیگر روزه گرفت، به جای کسی دیگر نماز کرد، مگر روزه چی؟ روزه این از مردی کلاف لفظ شده، پس نمیشه از به جای کسی دیگر نماز کند، به جای کسی دیگر کاری را انجام داد. اون شهتی که تا خوری میکنه برای خودش تا خوری میکنه. مثلا چند نفره میخوام به بس... سفر من سفرام میکنم. من فزیلتشو میبرم، قدر مساوات سنت رو میبرم و همین که خداوند برای من مشخص میکنه خیریت من را انتخاب میکنه نه اونها. شاید بریم سفر، شاید مستخر بشه، شاید آسان بشه، لیکن این نیت از لحاظ عجر و از لحاظ خیریتش برای من ولی برای دیگران نه. دیگران اصلاً منو خدا برایشون انتخاب نکرده، انتخاب نکرده. شخصی که استخاره میکنه برای خودش استخاره میکنه. خب یک مسئله ای هست، ما مثلا یک عمل رو انجام میدیم. بلند شدیم الان، من بلند شدم نماز کندم، گفتم الله اکبر، میخوام سنت بخونام. پدرم اومد، از اولی که گفتم الله اکبر، پدرم ایستاده، یه باش نماز کندم، نمازم درست درست تا آخر خاتمه دارم، درست درست مید؟ درس درس نمازم بود. عذابت آخرش ریا بود خب یک حالت دیگه گفتم الله و از بر پدرم رسید پدرم رسید آیا باش بودم نه نه نه پدرم الله الله میره نه من خاص خود نماز حالا اومد این وست و این نیتش درست کرد آخر نمازش خاصمش تکنیک با اخلاص سلام دارد نمازش درست درست دید. درست. حالا یک شمطی بدبخت نشست و تحیات استاره میکنه. یک دفر دید که حالا بقال معروف شیخش من یا فدرش منگوش بوله بکنم و فدر همه مت یواش نماز آخرش چی شد؟ و میگه سلام علیکم حالا ریا شد. العدبت و الحواتی. خود نشد خراف ما. شد. و خاتمه چی باشه؟ خاتمه خراب شد اون شخص از اول تا آخرش خراب شد رفت این شخص در آخرش خراب کرد بادم رفت مثل پیش حنفی ها نماز نیت نداره و سلام کرد. سلام دادن هم واجب نیست خاطر همین با بادر در رفتن یه لقم غذا خوردن نماز تموم شد یعنی حنفی که تو به نماز نشد تحیات میخونه میخواد سلام ده لازم نیست که سلام بزنی یه لقمه غذا باید یا آب بر نمازش شد. شد. یا اول میویشه نمازش تموم شده باشه یا بود از کفش بیرون باشه عبدالقادر ابن حاز خیلی سادهش میکنه میگه این نمازی که با بود سلامش باشه نماز نیست <تصفيق> خیلی برا خیلی ابن حدری ما تو خیلی شکیه کتاب المحلات تخمیره انفیات یعنی این قد نمازتون مسخره هست که با آب خوردن و با غذا خوردن حلامتون باشه خیلی مثل زشت دران خیلی برشون عیوی راستی کرد خب اینم از بحث جمع شدن نیت و ریا در یک شب یک عبادتی دو تا چیز با هم جمع شده باشن حالا چند تا مثال دیگه هم تو ذهنم بود خلی از زهنم پرید خب بریم برات منتهی زادی حدیث همان دنیا یسیوها دنیا اگر تا نکات رو چشم معنا کرده حالا اون معنی که مورد نظر ماست دنیا از ذنی میاد پس میاد از ذنی دنیا از ذنی و فانی و کوچکی میاد و گفته شده به هر چکر که روی زمین دنیا گفته میشه و بعدا گفتن مخلوقات می زمین دنیا هستند از دنیا زنی میاد از فستی میاد فمن کانت هجرته الى دنیا یعنی چی؟ هجرتش بشتر یک چیز مادی باشه قصد دنیاوی باشه قصد دنی داشته باشه. یا گناه باشد یا قصد دنیا باشه الى دنیا یصیبها بی یک دنیا یا بی ایک او امرات یعنی که حوانا او از سرزنشه که صلی علیه وسط این حدیث رو در خطبه بیان می‌کنند برای چیز؟ برای اینکه نیت ها اصلاح بشه قصد ها اصلاح بشه برای ترزنش می‌کنه کسی هجرتش برای دنیا باشه قصد هجرت داشته باشه از بلاد کفر بالفرد. که تا عبدالده هجرت از بلاد کفر از سرزمین کافران تا آخر روز دنیا یعنی انسان واجبه بر او که از سرزمین کفار هجرت بکنه تا آخرین ساعت زمانه که در روی زمین هست واقعی هست این هجرت واقعی هست هجرت از گناه داری هجرت های دیگر داری ولی که اینالا هجرتی که محصوده یکی هجرت محصود در زمان رسول ها در مکه بودن این هجرت دومی هجرت دیگر هجرت از براد کفر که تا اون هجرت که درش برسه شده هجرتی نداریم از مکه و مدینه هجرته يوم هجرته بلادك هو طائبة دة طائبة خل من الساعات باقي. خب الآن دري حديث دري ك يسوع الله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو أمراة ينتحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. خب إن حديثه شو جنبه تاكير حدیث کنی با تذکیر بشه فمن کانت در همون اولیه فمن کانت هجرته الى الله و رسوله قصد نیت. کسی که هجرتش به خدا و رسولش با قصد نیت بوده فهجرته الى الله و رسوله چیز عزهاز حکر تحکیب میخواد بکنه دیگه کسی که قصد عمل شرعی را کرد برای خدا کاری به انجام داد کسی کاری برای خدا انجام داد میشم هم چیه؟ سکمش هم خداییه مقبوله خب اگر قصدش دنوی باشه عجل در صرف خدا خواهد داشت فمن کنه سترته لدنی نیصفی او مرات ننگه ها فهجرته الى ما حضر الیه دیگه الى الله و رسوله دیگه نید. دیگه عجل یا صرف خدا نداره چی میخواد شهر بکنه؟ میخواد شهر ما رو وادار به نیت و قصد صحیح بکنه بهترین چیز بله خیر و متاع دنیا و الصالحه بهترین چیز دنیا زن دلن صالح اگر قصد داری قصد اصلاح بکن. من میخوام با این دختر ازدواج بکنم یا با این زن ازدواج بکنم به خاطر نیکی‌ش به خاطر صالحی‌ش نه به خاطر اینکه من دوستش دارم و به خاطر اینکه از خانواده فلانیه یا به خاطر اینکه خوشگله و خوشتیپه و فلانه. خوش اصلاح نیت، اگر عزیزت از خدا میخوای، اگر میخوای حبمش خدایی باشه، باید نیت هم خدایی باشه هم و هم اول قصد نیتش داشته باشید. خب، چه یک سؤالی که پیش بیاد، چرا در این حدیث ذکر زن شد؟ آنها میگن ذکر زن در این حدیث به خاطر اینه که بیش این فتنه اینکه مردم بهشت دوچار میشن، چیز زن. اگر میخواد شهری بشه دیگه بره. اگر میخواد کاری رو بکنه، بیشتر کارهاش هم گر بره زنی، زن میشکه. زن می و البته ای که بنی هم داشتن چی بوده، زن بوده. به خاطر همین بزرگترین چیز و وقتی این فدیه و بزرگترین این چیز دنیایی که ما را مشغول میکنه و نیاز ما را میکنه در این حدیث زن ختوب خطاب, خطاب قرار داده و زن گذاشته داره. خب، الان دنیا، خب یک زنی من دوستش داشتم پشتی بود برم بود دوستش داشتم بارشت دو برام کرم بدمه. دنیا بده من برم برم فلا من کده برم من برم برم برم برمشی خودم بخرم بده دنیا بده سوال چرا در اینجا مثلا سرزنش کردم رسول الله صلی اللہ کسی که برای دنیا کار انجام بده سرزنش برای چیه بنی صادق رسولی است ما در ببین لفظ لفظ حدیث میگه تمام کانت هجرات او لفظ هجرات بود هجرات امر شرعی یا غیر شرعی امر شرعی اگر یک امر شرعی را با قصد دنیوی خاطیش کردی ریا خاطیش کردی یا دنیا قاتیش کردی اومدی نماز خوندی نه به خاطر خدا که مردم تو را ببینن هر چند کلاه در ادای اون نماز برای خدا باشه فقط من این مسجد نماز کنه بخاطره که بگن که نماز کنه یا بگن که فلان کار فلان کار الان در این حدیث رسول الله قصد و نیت را اصلاح بکن اگر هجرت اون کسی که بخواد هجرت بکنه از مکه بیاد به مدینه قصدش زن دن باشه دنیا باشه حتا اینکه شکل و عمل ظاهرش اخره بیه ولی در باطن بخاطر دنیا باشه, دنیا باشه. بسیدان میخواد اینو بگه میگه که میخواد بگه که اعمال ظاهر و باطن باید اصلاح بشه یک مقصد شرعی یک کار شرعی باید اصل و باطنش شرعی باشه یک کسی مثلا بالفرد از اروپا بلند میشه میاد مثلا به قشم مثلا یا منطقه دیگر از مسلمانان زندگی بکنه چه موقع میتونه عجر کاملش رو داشته باشه هجه هجه داشته باشه وقتی که هدفش تراری از کف بوده تطبیق حالی رسول الله بوده اما اگر هدفش این باشه که چون تجارت اینجا بهتره بهتر میتونه کار بکنه اذیت نمیشه اگر این خطش باشه عجبی بره نه پس باید تجارت شرعی باشه و ظاهر و باطنش درست باشه تا اینکه ما از اون اجر قادر شوییم از طرف خداونده از وجه و جب. بعد از سالیان روی اگر عمل بعد با قصد انجمولیانی و عمل قبلی کن از از اما سلو با لحلیم قصد بعد داران قصد سلو بس گفته ملعب رفت بلخوادی بسی که انسان چطور باشه خاتمی انسان چطور انسان چطور باشه, باشه بأ انسان سعی باید بکنه نیتش اصلاح بکنه مثلا بالفعل من بلند بیشم نماز بکنم درسته بعضی یا فکر میکنن درست کردن عمل فقط برای یک شهر چیه؟ ریاف در بحث ریا و بحث اخلاق من بلند بیشم نماز بکنم پدر اومد نمازم یواش کردم. از خودم گفتم پدر منو می بینه من الان به خاطر پدرم این کارو بکنم گناه کار میشم ریا میشه نماد رو سریع بکنن سری خوندم نازم ریا شد نشد از ریا فرار کردم برای یه گر دیگهافت بدم این نوع ریا ها قصدی انسان با قصد خودش این کارو کرده این انسان باید همیشه مورد نمت نظرش باشه بر قصد فراری از یک چیز بخواد فرار بکنه بخاطر اکه ریا نشه معذب باشه که در یک ریای دیگه نیفته عمل محدثین وقتی که می رفت دنبال حدیث بخاطر کسی نبود بخاطر دنیا نبود ما محدثی رونا زیاد داشتیم محدثین بیشتر مثلا درست ایمان بخاری ده هزار نفر شرکت میکرد ولی کجا کجا نیست نیستن. اثری هم ازشون باقی نیست یکی ما مسلم بقید ح این محسوسانی که که گفتن که ما در بدایات نیت نداشتیم بعد نیت نداشتیم نه که نیت ما خراب بود متاسفانه ولی خیال نیت خراب داره میگن نیت نداشتیم بعدها سعی و تلاش کردن که نیتشون درست بشه و بعد خدا بهشون داد این اشخاص به خاطر سعی و تلاششون به خاطر کوشششون در که نیتشون اصلاح بشه در اون مدت که سعی کردن عجبشت رو میشه. این انسان مثلا به فر، الان قصد داره بره حج. نمیتونه. آیا خدا بهش میده نمیده. عجب و حج میده. روی رسولتی صلی الله علیه و زنه وقتی در جنگ طبق بودن گفتن که اشخاصی هستن در مدینه خواستم که بیانگه نیمدن. خواستن. بحث خواستن هستند، چون در بحث محادثین، بحث خواستن هم. خواستن خواستن میادید اصلاح بشید، خواستن که با ما میاد، لیکن نیومدن، اونها عدر مثل شما رو دارن، هیچی کم نمیشه، مثل کسی که با مالش و جانش ماله جهاد رو صحابه تعجب کردن، ما این همه زهر بکنیم، اونها هم مثل ما، چی گفتن راستان؟ گفتن که اونها اگر میتونستن همین کار مثل شما را کردن، ولی چی؟ مسئلتشون، حاجتشون، اونها رو حبس کرد. خیلی مسئله مهمیه که انسان همیشه سعی بکنه نیتش رو اصلاح کنه. کنه. در کلب علمش، در نمازش، در عتش. خب. این خلاصه یه بحث حدیث این منعاملو به نیات. خونزه دریخه بکت داریم. فکره خونزه دریخه بزامونه. اه، اه حديث بعدي أتبعوا حديثة بعدية. أمام المخاطمين يتحدث عن كلام ابن الأنباري يتحدث عن بحث لتحجرات مسؤولة ابنه. قال أمام الأنباري في كتابه الورع في الحديث دليل على أنه لا يجوز الإقدام على الفعل قبل معرفة حكمه. في الحديث دليل برئينك إنسان. نقا د من برای یک س رو کللب بکنه قبلی حک میو بدونه قالا وجب اصطاللی من ان لا بددل المکتی من اتیانی بما معومنا بگی ال وجهه میگه چون یک شخص مکلف لازمه برش که اون کاری که از او مطلوب شده از او خواسته شده بر وجهی که ازش خواسته شده انجام بده صلو که که مصی عقیق مصلاح واده الرسول انك فدوة كما رايكم صلى قبل ان نكمل طلب القلب فريده على كل مؤمن مكلف من كارك من عملي ميخاز انجام بده باید قلب به اون داشته باشه خاطر هم ديگه حي ظاهرنا طلب علم فریضة نه کل مؤمن. تلب علم، طلب علمی که ما بشم مکلفه، برای اون آمارات، آماراتی که بشم مکلفه واجب بر هر مکلف. میخوای بری حج؟ باید عرضش دو بشه. بله. میخوای نماز بکنی؟ بس قبل از این که نماز بکنی، شرپ و احكامش را هم باید یاد بگیری. کسی که میخواد حج بکنه، کسی که میخواد یک هر کار عبادت شرعی را انجام بده. چون حج در راه خدا و رسولش یک مسئله شرعیه. باید آدار و احکامش رو بدونه تا چی تا اجر و فادات شرعیش هم داشته باشه تمامش داشته باشه در دا حقی که میخواد نماز بکنه باید علم داشته باشه به با با اون چیزی که بهش مکلفه به اون ساعتی که بهش مکلفه از ارکانش و از تمامی وجوهش و قد نفى رسول الله صلی الله و علیه و سلم قد نفر تالله الله عليه سلم ان يكون العمل منتفعا به الا بالنیه با الله نفی کردن یک عمل کاری داشتند ببری بدون نیت یعنی بدون نیته ای نیته تقرب لمثلبه الله من العبد بدون نیتی که شخص برای با قصد داشته باشه با اون نیت برای خداوند متقرب بشه یعنی یک کاری که تو میخوای برای خدا انجام بدی در اون کار باید نیت داشته باشی نیت نداشته باشی قصد نداشته باشی در اون عمل اجر نداری قصد نداری چون حصر این زمان و به یعنی اعمال صحیحه نیاز به نیت صحیح داره این دو چیزی که لازمه همه همدن نباشن عمل صحیح باشه نیت صحیح نباشه بدون فایده و نیت صحیح باشه عمل صحیح نباشه باطل میتند یک به دلیل مثلا بل فتن اصحابت آمدن ابن مسعود بن ابی سعید خدری آمدن یک حلقه نشسته بودند سنگ می خوردند تاسف وقتی که اومد این کار کرد گفتن که صحابه این کار انجام ندادن کارتون درست نیست. گفتن که ماما ارادن ایلا الخیر ما نخواستیم کار خیر انجام بدیم فرمودن گفتن و کم مرید للخیر لایدرکو چقدر از خواست کار خیر می انجام بدن بلی نمیتونن بهش برستن چرا؟ چون وجهش صحیح نیست طریقهی صحیح نیست پس سرده که چرده که عمل درست باشه و نیت هم درست باشه. اگر عمل الان اینجا نیتشان درسته درستی، درسته ولی عملشون اشتبار شرط شروع قبول عمل چی بود؟ شرط صحات یک عمله چه شرط شروط شروطی بود؟ یکی اخلاص یکی اتباع اتباع اتباع ایمان باید مؤمنم باید باشه تا اون عمل ازش قبول بشه این خلاصه بحث حدیث این امن عمل و نیات و الله حدیث بعد را بثلاثي بعد ما يقول كل قائم سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك وبحمدنا ما تقول لك.